مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد هم نواختن مصطفی علیه السلام آن عرب مهمان را و تسکین دادن او را از اضطراب و گریه و نوحه که برخود می کرد در خجالت و ندامت و آتش ناامیدی این سخن پایان ندارد. آن عرب، ماند از الطاف شهر در عجب، خواست دیوانه شدن، عقلش رمید، دست عقل مصطفا بازش کشید. گفت این سوآ بیامد آنچنان که کسی برخی زد از خواب گران. گفت این سوآ مکن هین با خدا که از این سو هست با تو کارها. آب بر رو زد درآمد در, در سخن که شهید حق شهادت عرضه کن تا گواهی بدهم و بیرون شوم سیرم از هستی در آن حامون شوم ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی علستیم و بلا که بلا گفتیم و آن را زمتهان. فعل و قول ما شهود استو بیان از چه در دهلیز قاضی تن زدیم نه که ما بهر گواهی آمدیم چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی ده شهادت از پگاه زان بخاندندت بد اینجا تا که تو آن گواهی بدهی و ناری تو از لجاج خیشتن بنشستهی اندرین تنگی کف و لب بستهی تا به ندهی آن گواهی ای شهید تو از این دهلیز کی خواهی رهید یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوته را مکن بر خود دراز خواه در صد سال، خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان بیان آن نماز و روزه و همه چیزهای برونی، گواهی هاست بر نور اندرونی این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد این زکات و حدیه و ترک حسد همگواهی دادن است از سر خد خان و مهمانی پی اظهار راست قیمهان ما با شما گشتیم راست هدیه ها و ارمغان و پیشکش شد گواه آن که هستم با تو خش هر کسی کوشد یا یافوسون چیست دارم گوهره در اندرون گوهره دارم ز تقوا یا سخا این زکات و روزه در هر دو گوا روزه گوید کرد تقوا از حلال در حرامش دان که نبود اتصال وانزکاتش گفت کو از مال خیش میدهد پس چون بدزدد زهل کش گر به کند پس دو گواه جرح شد در محکمه عدل اله هست سیاد ار کند دانه سار ناز رحم و جود بل بحر شکار هست گربه روزدار اندر سیام خفته کرده خیش بحر سید خام کرده بد زن سد صد قوم را کرده بد نام اهل جود و سام را فضل حق با این که او کج میتند آقبت زین جمله پاکش می کند. سبق برده رحمتش و را. داده نوره که نباشد بعد را. کوششش را شسته حق زین اختلاط. غسل داده رحمت او را زین خباد. تا که غفاری او ظاهر شود، کلش را مخفری غافر شود، آب بحر این ببارید از سماک تا پلیدان را کند از خبس پاک. پاک کردن آب همه پلیدی ها را و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی لاجرم قدوس آمد حق تعالی آب چون بیگار کرد و شد نجس تا چنان شد کاب را رد کرد حس حق ببردش باز در بهر سواب تا بشستش از گرم آن آب آب سال دیگر آمد و دامن کشان هی کجا بودی به دریای خوشان من نجس زینجا شدم پاک آمدم بستودم خلعت سوی خاک آمدم هین بیایید ای پلیدان سوی من که گرفت از خوی یزدان خوی من در پذیرم جمله زشتیت را چون ملک پاکیید هم افرید را. چون شوم آلوده باز آنجا روم. سوی اصل اصل پاکی ها روم دلق چرکین برکنم آنجاز سر. خلعت پاکم دهد بار دگر کار او این است و کار من همین عالم است رب العالمین گر نبودی این پلیدی های ما کی بودی این بارنامه آبرا کیسه های زر بدزدید از کسی می رود هر سو که hin کو مفلسی یا بریزد بر گیاه یا بشوید روی رو ناشسته. یا بگیرد بر سر و حمالوار کشتی بی‌دست و پا را در بهار صد هزاران داروین در وینه‌هان زان که هر دارو بروید زو چنان جان هر در دل هر دانه می رود در جو چو دارو زو یتیمان زمین را پرورش، بستگان خشک را از وی روش، چون نماند مایش تیره شود، همچون ما اندر زمین خیره شود، استعانت آب از حق جل جلالهو بعد از تیره شدن. ناله از باتن برارد که خدا آنچه دادی دادم و ماندم گدا ریختم سرمایه بر پاک و پلید ایشه سرمایده حلمن مزید عبر را گوید ببر جای خوشش هم تو خوشیدا و بالا برکشش راههای مختلف میراندش تا رساند سوی بهر بی‌هَدش خودغرض زیناب جان اولیاست، است کو غصول تیرگی های شماست چون شود تیره ز قدر اهل فرش باز گردد سوی پاکی بخش عرش باز آرد زان طرف دامن کشان از تهارات محیط او درفشان زختلات خلق یا بد ای تلال آن سفر جوید کرهنا یا بلال ای بلال خوشنوای خوشسهیل معزنا بر بزن تبل رهیل جان سفر رفت و بدن اندر قیام وقت رجعت زین سبب گوید سلام از تیمم ورهانند جمله را و طالبان قبله را این مسل چون واسطه است اندر کلام واسطه شرط است بحر فهم عام اندر آتش کی رود بی واسطه جسم اندر کو رهید از رابطه واسطه حمام باید مرترا تازه آتش خوش کنی تو تبع را چون نتانی شد در آتش چون خلیل گشت حمامت رسول آبت دلیل سیری از حق است لیک اهل تبع. که رسد به واسطه نان در شبع لطف از حق است لیکن اهل در نیابد لطف به پرده چمن چون نماند واسطه تن به هجاب همچون موسا نور مه یابد ز جایب، این هنرها آب را هم شاهد است کندرونش پرز لطف ایزد است. گواهی فعل و قول بیرونی بر زمیر و نور اندرونی فعل و قول آمد گواهان زمیر زیندو بر باطن تو استدلال گیر چون ندارد سیر سرت در درون بنگرندر بول رنجور از برون فعل و قول آن بول رنجوران بود که طبیب جسم را برهان بود آن طبیب روح در جانش رود و جان، جان اندر ایمانش رود حاجتش ناید فعل و قول خوب احزرو هم هم جواسیس القلوب این گواه فعل و قول از وای به جو کو به دریا نیست واصل همچو جو در بیان آن که نور خود از اندرون شخص منور به آنکه که فعل و قول بیان کند گواهی دهد بر نور بای لیک نور سالک که از حد گذشت نور او پرشد بیابان ها و دشت شاهدیش فارغ آمد از شهود وستکلف ها و جانبازی و جود نور گوهر چو بیرون تافت است زین تسلس فراغت یافت است پس مجو از وی گواه فعل گفت که از او هر دو جهان چون گل شگفت این گواهی چیست اظهار نهان خواه قول و خواه فعل و غیر آن که غرض اظهار سر جوهر است وصف واقی وین این بر معبر است این نشان زر نماند بر مهاک زر بماند نیک نام و بیز شک این صلات و این جهاد و این سیام هم نماند جان بماند نیکنام نام جان چون این افعال و اقوال نمود بر محک امر جوهر را بسود که اعتقادم راست است اینک گواه لیک هست اندر گواهان اشتباه تذکیه باید گواهان را بدان تزکیاش صدق که موقوفی به آن حفظ لفظ اندر گواه قولی است حفظ عهد اندر گواه فعلی است گر گواه قول کش گوید رد است ور گواه فعل کش پوید رد است قول و فعل بی تناقض بایدت تا قبول اندر زمان پیش آیدد سعی کم تناقض اندرید روز می دوزید و شب بر می دارید. پس گواهی با تناقض کش نود یا مگر حل می کند از لطف خد فعل و قول اظهار سر است و زمیر هر دو پیدا می کند سر سطیر. چون گواهت تذکیه شد شد قبول ورنه محبوس است اندر مول مول تا تو بستیزی ستیزند ای هرون فانتظر هم انهم منتظرون ارزا کردن مصطفی علیه السلام شهادت را بر مهمان خیش این سخن پایان ندارد مصطفی ارزا کرد ایمان و پذرفت آن فتا آن شهادت را که فرخ بوده است بند های را دک شده است گشت مؤمن گفت او را مصطفی کم شبان هم باش تو مهمان ما گفت والله تا ابد تو توام هر کجا باشم به هر جا که روم زنده کرده و و دربان تو این جهان و آن جهان بر خانه تو هر که بگزیند جزین بگزید خان عاقبت درد گلویش زست خان هر که سوی خان غیر تو رود ده و با او دان که همکاسه بود هر که از همسایگی تو رود دی و بی شکی که همسایش شود و رود بی تو سفر او دوردست دیو بد همراه و همسفری است. ور نشیند بر سر اسب شریف. حاسد ما هست دیو او را ردیف. وار بچه گیرد از او شهناز او. دیو در نسلش بود انباز او. در نوبی شارک همو گفته است حق، هم در اموال و در اولاد، ای شفق. گفت پیغمبر غیبین را جلی در مقالات نوادر با علی. یا رسول الله رسالت را تمام تو نمودی همچو شمس پیغمام. این که تو کردی دو صد مادر نکرد ای سی از افسونش با آذر نکرد. از تو جانم از اجل نک جان ببرد. آذر هر شد زنده، زاندم باز مرد. گشت مهمان رسول آن شب عرب. شیر یک بز نیمه خورد و بست لب. کرد الهاش بخور شیر و رقاق. گفت گشتم، سیر و الله به نفاق این تکلف نیست نه نی ناموس و فن سیر تر گشتم از آن که دوش من در عجب ماندند جمله اهل بیت پر شد این قندیل زین یک قطره زاید آنچه قوت مرغ بابیلی بود سیری میده چونین پیلی شود، فج فجه افتاد اندر مرد و زن، قدر پشمی خورد آن پیل تن، هرس و وهم کافری سرزیر شد، اجدها از قوت مور سیر شد، آن گدا چشمی کفر از وای برفت، لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت. آنکه از جو بقر او می تپید همچون مریم میوه جنت بدید. میوه جنت سوی چشمش شتافت. معده چون دوزخش آرام یافت. ذات ایمان نعمت و لوتیست حول. ای قناعت کرده از ایمان قول بیان آنکه نور که غذای جان است غذای جسم اولیا می شود تا او هم یار می شود روح را که شیطانی آلا یدا گرچه آن متعوم جان است و نظر جسم را هم زان نصیب است ای پسر گر نگشتی دیو جسم آن را اکول اصلمش شیطان نفرمودی رسول دیو زنلوت که مرده هی شود تا نیاش آمد مسلمان کی شود دیو بر دنیاست آشق کور و کر عشق را عشق دگر برد مگر از نهان خانه یقین چون می چشد اندک اندک رخت عشق آنجا کشد یا هری سلبتنه ار رج ها کذا اینم المنهاج و تبدیل و یا مریز القلب الرجأ للعلاج جملة التدبير تبديل المزاج أيها المحبوس في رحن الطعام سوف تنجو ان تحملت الفتام ان في الجوع طعاما وافرا افتقده ورطجه یا نافرن اختزه به نور کن مثل البسر وافق الاملاک یا خیر البشر چون ملک تسبیح حق را کن غذا تارهی همچون ملایک از ازا جبرائیل ارسوی جیفه کم او به قوت کیز کرکس کم زند حب خانه نهاده در جهان لیک از چشم خسیسان بس نهان گر جهان باغ پر از نعمت شود قسم موش و مار هم خاک بود